سوره نبع یک اسمش هست سوره نبع و اسم دیگرش هست سوره عمیتسالون چون آغاز شده با عمیتسالون به این خاطر این سوره را عمیتسالون هم میگویند و این موضوعش هم درباره قیامت هست این نسبت به سوره مرسلات تخویف بیشتر دارد اونجا بود که ان عذاب ربک لواقع همین تخویف بود اما در اینجا الم نجعل الارض میهادا والجبال اوتادا تا اینکه خدای عزوجل همه نعمت ها را می فرماید و مصائبی که در دنیا میاد همه را ذکر می فرماید و می فرماید همان که در این دنیا مصائب هست مشکلات هست در اون دنیا هم مصائب هست این سوره هم از سوره های مکی هست، هشتادومین سوره هست که بر آن حضرت صلی اللہ علیه و سلم نازل شد و آن حضرت این سوره را هم به کسرت تلاوت می کردند. این سوره، در این سوره بسیاری از نعمتها را الله ذکر کرده و جای دیدم که هر کسی می خواهد محبت الله عزوجل در قلبش جا بگیرد و عظمت پروردگار آنگونه که حقش هست لذا سوره نبع را همیشه بعد از عصر بخواند. این سوره نبع از آنجه البته با حضور قلب با تدبر در وجود انسان از به خدمت شما که محبت ایجاد می کند و عظمت ایجاد می کند الله تعالی می فرماید عمی تسائلون وقتی که در باره قیامت گفته میشد اونا از هم دیگه سوال میکردند واقعا قیامت درسته یا از مسلمانان سوال میکردند از رسول الله سوال میکرد واقعا قیامتی خواهد بود الله میفرم نعمه یا تسائلون از چی چیزی اونا از هم دیگه سوال میکنند عن النبی العظیم ای یا تسائلون عن النبی العظیم از اون خبر بزرگ اون خبر خبر بسیار بزرگ نبع به من خبر به همین قاطر این سوره را نبع میگویند نبع یعنی خبر بسیار بزرگ و حادثه بزرگ الَّذِي هم فیه مختلفون اون خبری که در اون خبر اختلاف داشتند اختلاف چی بود؟ بعضی از مجرم مشرکین کلن انکار میکرد قسم میخورد و اقسمو بالله جهد هم لا یبعث الله من یموت. سوگند یاد میکرد که خداوند کسی که بمیرد خدا او را دوباره زنده نمیکنه بلند نمیکنه اما بعضی نه بعضی دیگه تردد داشتند شک داشتند میگفتن شاید باشد قیامتی ولی اگر قیامتی باشد حال ما خوب میشه چون در این دنیا حال ما خوبه اینجا ثروت داریم سرمایه داریم اونجا هم خداوند همین کار را با ما می الله می فرمد هُم همفی مختلفون آن قیامتی که در آن قیامت اختلاف داشتند کلا سعلمون هرگز اینطور نیست که آنها فکر میکنن نمیشه سیعلمون ان قریب بعد از مرگ اون میدونند همین که بمیند میدانند می ثم کلا سعلمون. ثم این تعقیب ذکری یعنی هم تکرار میکنم باز هم ذکر میکنم باز هم میگم کلا هرگز اون طور نیست که اونها قبول نکنند انکار نک انکار کنند سی اعلمون ان قریب بعد از مردن اونها میدونن که قیامتی هست الان قبول ندارن الم نجعل الارض حال خدای عز وجل بیان امکان قیامت را بیان میفرماید ببینید اگر ما قدرت خداوند اززوجل را قیاس بکنیم به قدرت یک انسان ضعیف، یک انسان بیچاره، یک انسانی که بسیار محدود از قدرتش، اگر بر اون قیاس بکنیم خب نمیشه قیامت. اما اگر قدرت خدا را در مخلوقات بزرگ خدا ببینیم، اون وقت به این ازعان و نتیجه میرسیم که قیامت برپا میشه. حال قدرت خدا را ببینید، المن جعلی الأرض می‌هادا آیا ما زمین را گهواری قرار ندادیم؟ مهد گهواره را میگند گهواره جای استراحت بچه هست. یعنی زمین برای شما محل استراحتی است. یکی از نعمت های خداوند اینه که زمین برای ما جای راحتی هست. شما روی زمین هستید هیچ غمی ندارید. نه زمین تکام میخورد نه لرزش و جنبشی دارد هرچی که مایحتاج شما باشد شما انجام میدهید در زمین برای خودتون اتاق و خانه درست میکنید در زمین چه حفر میکنید قنات میزنید برای خودتون آب در میارید در زمین برای خودتون راه درست میکنید زمین را میشکنید برای خودتون زراعت میکنید و مرده های خودتون را در زمین دفن میکنید چه بسا چیزهایی که شما بخواید پنهام بکنید خزائن خودتون را دفینه های خودتون را تلاه های خودتون را در همین زمین دفن میکنید چندین منافع از این زمین به انسان میرسد پس زمین جای راحتی است الم نجال ارض مهادا آیا ما قرار ندادیم زمین را جای راحتی گهواری والجبال اوتادا و آیا ما این کوها را میخ قرار ندادی؟ اینا میخ هستن. میخ هرچی محکمتر بشه چادر نمیفته. لذا اینا برای زمین چی هستن به مسابه میخ هستن زمین تکان نمیخوره. زمین با, با وجود این میخها قرار داره. و خلق ناكم از واجا و ماشمرآفریدیم انواع آفریدیم. بعضی ها مرد آفریدیم، بعضی ها زن آفریدیم. به صورت متنوع آفریدیم. اگه همه مرد خلق می شدند نه سنون قریز می اگه همه زن خلق می هم همچینیم. لذا الله تعالی شم ما شما انسان ها را به صورت متفاوت آفرید. و جعل ن قرار دادیم شب قرار دادیم خواب شما را سبب راحت واقعا انسان راحت میشه کسی قدر این نیمت را میداند که خواب ندارد کسی که خواب داشته نباشد و این مریضی خدا نکنه کسی بگیرد هیچ مریضی از این مریضی بدتر نیست پیش چند وقت پیش یک مریض پیش یک مریضی رفتیم الله تعالی رحمتش بکنه فوت کرده نشسته بود تنگی نفس داشت همین طور که نشسته بود بنده عرض کردم حال شما چطوره گفت دعا بکن که یک ذره بتونم بخوابم گفت سه شب و سه روز من به همین حال نشستم نمیتونم تکان بخورم یعنی انسان هر دردی داشته باشه هر مریضی داشته باشه وقتی که این نعمت خواب ازش گرفته بشه دیگه هیچ مشکلی بزرگتر از این برای اون انسان نخواهد بود همه دردها را فراموش میکنه میگه فقط دعا کن که یک ساعت بخوابم مردمی که خواب از اونها گرفته میشه این نعمت چقدر پیش دکترها میرن چقدر قرص خواب میخورند تا لحظاتی بخوابند لذا الله میفرماید شما انسانها این خواب را دارید هر بار که میخوابید چقدر راحت میشید به این نعمت خدا فکر نکردید و جعلن لیل لباسا و شب لباس قرار دادیم شب لباسی هست همه عیوب ای را هم می در شب هر کسی حرکتی بی کند مشخص هم نمیشه و شب را هم خدا تعالی لباس سیاهی قرار داده که یک نوع خاموشی برای شما هست گویا شب چی هست اون ساعت خاموشی گاهی در معاهد آموزشی، دانشجویان طلاب یک ساعتی دارند که اون ساعت لامهار را برگهار خاموش میکنه باید همه بخوابند چون اگر روشن بشه نمی خوابند. لذا شب را خدای عزواجل ساعت خاموشی اعلام میکنه ساعت استراحت اعلام میکنه لباسی میندازه یعنی چادر سیایی بر کل زمین میندازه همه جا تاریک میشه فقط به اندازه چی؟ به اندازه همون چراغ خواب چراغ های یک ضعیف و که روشن هست که اگر نیاز بیرون داشته بتونی جلوی پایت را ببینی دیگه الله تعالی چه نظامی برای ما درست کرده ما متوجه نیستیم و اگر قبلا هم این نکته یاداوری کردم اگر شب نبود اولا این آرامش نبود و بعدا نظام این دنیا مختل می‌شد چرا چون که ما در یک ساعتی دیگه استراحت نمیکردیم فرض کنه که شب همچی می‌شد خورشید بود اون ساعت هم خورشید بر روز بود خب یکی از شما دو ساعت قبل می خوابید دی. یکی دیگه دو ساعت بعد یکی دیگه دو ساعت بعد لذا هر گروهی در یک ساعتی می خوابیدند وقتی که همه انسان ها خوابشون متفاوت باشه استراحتشون متفاوت باشه قطعا کارشون هم متفاوت خواهد لذا شما کاری داشتید نیازی داشتید پیش کسی دیگه مغازش می رفتید محل کارش می رفتید خوابه خو الا شما نمیخوابید او میخوابه وقتی که شما بیدار شما میخوابید اون بیداره لذا کارهای شما مختل میشد مشکلات شما حل نمیشد الله عزوجل نظامی ایجاد کرده همه با هم به ولی متاسفانه مردم بسیاری هستن که دارن در این نظامی که پروردگار این نظام یک نظام فطری هست درست کرده مردم دارند خودشون مختل میکنند الان یک گروهی هستن شبها تا صبح بیدارن روزا میخوابند روز برای فلان آغا میگردی میگه این تا نماز عصر خوابه چه شبها تا صبح بی داره. این مریضی مریضی بعد از این امراض دیگری و عوارض دیگری هم به دنبال داره خدای تعالی وقتی که میفرماید من شب را خواب را آرامش قرار دادم و شب را برای شما لباسی قرار دادم که در شب بخوابید هر چیزی که خدای تعالی برای ما قرار داده به اون عمل بکنیم صدها و هزاران منفعت و فواید دوش است الان چیزهای دکترها میگویند والله و عالم مثلا میگن کسانی که شبها نمیخوابند اینها زود پیر میشند کسانی که مثلا در اون ساعت اول شب که مال استراحت هست اگر استراحت بکنند از نظر اعصاب از نظر روان چنان اونا سالم و راحت هستند که در ساعات دیگر خواب هر چه بخوابند لذا اون استراحت اون راحت هیچ وقت براش اصل نمیشه لذا خیلی از مریضی که شما میبینید امروزه انسان ها همه روانی هستن همه قرص میخورن همه با یک حرف با دومی حرف دعویشون میشه همه بخاطر خاطر اینکه نظام الهی را در هم برهم کردن لذا الله میفرماید و جعلنا اللیل لباسها ما قرار دادیم شب را لباسی برای شما وجعلنا النهار نهار و روز را معاش قرار دادیم سبب کسب شما که شما لذا رزق خودتون را حاصل بکنید وبنینا فوقكم سبعاً شدادا وما بنا کردیم درست کردیم بالا سر شما هفت آسمان محکم محکم که اینها به این سستی نمیافتند لنخرج به حبم ها وجعلنا سراجا و هاجا و در اون آسمان چراغ درخشنده ای قرار دادیم که کی, کی باشد خرشید باشد و انزلنا من المعصرات و نازل کردم از معصرات معصرات یعنی ابرهایی که نزدیک به باریدن باشد گویا فشار دمیشم فشار دادیمیشند ما انسجاجا آبی که بیکسرت جاری هست به بیکسرت ریزان بیکسرت جاری این ابر را چرا خدا نازل فرمود؟ نظامی دارد لنخرج بهی حبا و نباتا تا بیرون بکنیم به وسیله این حبوبات را و نباتات را انواع حبوبات که خوراک شما هستن گندوم، جو، برنج، ارزان، زررت همه اینها برای ماهای، برای سالهای وقتی که خداون جلوی این نظام را میگیرد مردم چطور پریشان میشند؟ این ام به اون میگه اون ام به این میگه دعا کن باران بیاد خیلی سخت میشه لذا الله تعالی میفرمه همه اینها را من به صورت منظم برای شما ترتیب دادم تنظیم کردم لنخرج بیه حبا و نبات و جنات الفافا و همچنین باغات گنجانی ما برای شما پیدا کردیم باغات گنجانی لذا ببینید خدا تعالی از این نظام عبر و باران و زمین و رویش روی زمین و رویدن نباتات و حبوبات و باغها و درختان از اینجا استدلال میگیرد بر اینکه اون ذاتی که این نظام عجیب را با قدرت مطلق خودش ایجاد کرده اون ذات می که روز قیامت هم شما را زنده بکنه بعد از اینکه این مرحله از دلایل تمام میشه الان الله عزوجل میپردازد به قیامت این یوم الفصل کان میقات روز فصل روز فیصله میقات همه شما است وقت همه شما هست وقتی که برای شما تعیین شده اون روز چه روزی هست يوم ينفخ فی السور اون روزی هست که سور دمیده میشه فتعتون افواج شما گروه گروه میائید و فتحت السماء آسمان این آسمانی که قبلا خاندیم سب عن شدادا حفظ سقف محکم هیچ چیزی تو نفوز نفوظ این آسمان دیگه تکه پاره میشه و فتحت السما آسمان کشوده میشه فکانت ابواب همیش در میشه یعنی همیش ورودی هر کی میتونه داخل بره و سویرت الجبال کوها به سیر میافته البته بعد از اینکه که در هم کوبیده بشه و ریزه ریزه بشه و پودر بشه سیر میکنه حرکت میکنه فکانت سرابا این کوها سراب میشه یعنی ریگ درخشنده میشه ان جهنم مکانت مرصادا همان جهنم در اون روز آماده باش هست در کمین هست در کمین چی کسانی؟ لِتَّاغِينَ مَآبَا برای اون انسان سرکش مآب هست آب یعنی جای رجوع محلی برای رجوع اونها سرکش ها باید کجا رجوع کنند؟ کدوم دفتر مراجع کنند؟ به جهنم بروند میمانند در آن جهنم احقابا احقاب جمع حقاب است حقاب زمان طولانی را میگند بعضی میگند هر حقاب هشتاد هزار ساله بعضی میگن هر حقاب صد هزار ساله خب پس معلوم میشه که آخر جهنم پایان میابد نخیر نگفت ده تا حقب نگفت صد تا حقب احقاب یعنی چندین حقب که اون احقاب از شمارش و عدد چی هستند خارج هستند یعنی برای ابدال همیشه لا يذوقون فیها بردا ولا شرابا نمیشونن در اون جهنم چیز خونکی و نوشیدنی الا حمیم و مگر آب جوش و غساق غصاق را قبلانم خواندیم که از زخم جهنمیها ها آبی زردابی خونی چرکی که میریزه و جمع میشه اونها میگن غساق از اون میخورند جزاء وفاقا وفقا الله میفرما جزای کاملشون کیفری اعمالشون به صورت کمال همینه باید همینو بخورن چرا اینا چیکار کردن انهم کانو لا یرجون حسابا انها اعتقادی نداشتن لا یرجون یعنی لا يعتقدون اعتقادی به حساب و کتاب نداشتن ببین کسی که اعتقادی به حساب و کتاب داشته نباشه وقت تقوا در درونش نیست پرهیزگاری نیست خدا ترسی نیست هر جرم و جنایتی مرتکب میشه هر فسادی انجام میده انهم كانوا لا يرجون حسابا وکذبوا بایات کذاب تکذیب کردن آیات اماره تکذیب کردن و کل شیئ احصایناه کتابا الله می هر چیزی را ما احاطه کرده بودیم از نظر نوشتن هر کاری که کردن، هر تکذیبی، هر گناهی، هر فسادی، هر جنایتی، همه را نوشتیم، همه در احاطه ما بود. لذا به این مجرمان گفته میشه، اینهایی که از هیچ فسادی دریغ نکردن، فذوقو فلن نزیدکم الا عذابا بچشید، بچشید جهنم و عذاب جهنم را ما نمی افضاییم در شما مگر عذاب را هر لحظه عذاب بیشتر میشه کمتر نمیشه الله پناه این وضعیت چه کسانی بود بله مجرمین بود اما متقین بار بار خدمت شما عرض کردم که تنها شرط بهشت تقواست متقین به بهشت می روند. لذا پرهیزگاری را و تقوی را پیشه بکنیم. و لباس تقوی بهترین لباس هست که یک مومنی بتن خودش داشته باشه که از هر گناه و معصیت و فساد کوچک و بزرگ بدور باشد. اِنَّ للمتقین مَفَازَاء همانا برای اهل تقوی برای اونهایی که از خدا میترسند. مفازن کامیابی هست این کامیابی و فوز و فلات چیه؟ حدائق و اعناب مفازن مبدل منه هست حدائق بدل هست یعنی, یعنی باغچه ها و باغات انگور اعنابا اعناب بعد از این تخصیص بعد از تعمیم بعد از این که صورت عام باغا را ذکر کرد خصوص باغ انگور چین انگور چیزی بود که عرب خیلی دوست داشتند. و برای خودشون انواع شراب درست میکردن. و کواعب اطرابا دوشیزگانی که هم سن و سال کواعب جمع کاعبه است کاعبه کعب میگویند شتالنگ پارانه چون برامده است اونها را کواعب میگویند چون که سینه هایشون به نسبت برامده است یعنی تازه دوشیزه هستند و هم سن و سال های بهشتی هستند و کأساً دحاقاً جامی برایشون هست که پر از شراب است یعنی تعارف میشه انجام لا يسمعون فیها لغواً ولا كذابا تو دنیا بعض انسان ها هستن تو رفاه هستن ولی هر روز حرف ناگوار میشنوند هر روز خبری میاد ناراحت میشند هر روز از همسایشون بد میشنوند لذا زندگی همیش مقدره ایش مقدره اونجا نه اونجا جنن لغوی میشنه و نہ دروگی میشنه و نہ نا سخن ناگوار میشنه جزاء ام من ربك عطاءن حسابا این جزای هست پاداشی هست از جانب رب تو که عطایی هست حس حساب شده الله بر اساس حساب خاص به هر کسی این ایت میفرماد کدام رب ببین اون کسی که این وعده اون کس دارای قدرت مطلق است رب السماوات والأرض اون ربی که رب آسمان هست و زمین هست و ما بینهما رب ما بینشان هست رب تمام عالم هست الرحمن اون ربی که مهربان هست لا یملکون منه خطابا اما خلق نمیتواند با او سخن بگوی مالک خطاب نیستن یعنی اونجا چنان حیوتی چنان عظمتی حاکم است هیچ کسی را یاره سخن گفتن نیست یوم یقوم الروح والملائکت صفا روزی که برمی خیزد بلند میشه روح جبرئیل امین و همه ملائکه همه بلند میشن صف بستن ملائکه توانایی سخن گفتن ندارم در هم می لرزند لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن سخن نہ گویند هیچ کسی مگر کسی که رحمان بیش اجازه بده این نفی شفاعت هم هست مشرکی میگن برای ما ملائکہ سفارش می کنم بعضی میگن برای ما انبیا سفارش می کنند. چه چون ما پیغمبر زاده ها هستیم ما اولیا زاده ما پیر ایم اللہ میفرمائے هیچ کسی جرأت صحبت کردن نداره مگر کسی را که خداوند خودش دستور بده پس بهتر رابطه تون را مستقیم با خدا درست کنید لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن مگر کسی که رحمان به او اجازه بده و قال الصواب رحمان هم هر چی میگه سواب میگه یعنی درست دقیق صحیح چیز خطائی و خلافی نمی ذلك ذالک اليوم الحق انت تخویف اخربی است این هس روز ان روز هست روز اون روزی که حق است یعنی راست واقع است یک واقعیتی است فمن شاء تخذ الى ربه مآبا لذا این روز سینا روز سختی است از شما بندگان هر کسی می بگیرد اون را که پناهگاهی به رب بیا یعنی پناهگاهی جای بشه رب بس پناهگاهی تو میخای رب بشه از الان به رب بچسب از الان رابطه ترا فقط و فقط با رب داشته باش انا انذرناكم عذابا قریبا الله عز وجل اتمام حجت میفرماید بعد از اینکه همه احوال را بیان فرمود بندگانش را میگه ای بندگان ما شمارا بیم دادیم ما شمارا ترسندیم از اون عذابی که اون عذاب دور نیست قریب هست یوم ينظر المرء ما قدمت یدا اون عذاب وقت عذاب را میگه الله بیان فرمو عذاب که هست؟ روزی که هر انسان میبیند ما قدمت یدا اون چیزی که تقدیم کرده دستایش پیش پیش فرسته یعنی این چیزی که عمل کرده و برای آخرتش فرستاده می اونجا. اونی که نیک هست، اونی که مومن هست خوشحال میشه. سبحان الله این همه صدقه این همه نماز نافله، این همه خیرات، این همه امر به معروف نهی از منکر، خدمت برای انسان ها خدمت برای دین، اینا را که می بینه خوشحال میشه. اما کافر وقتی که پیش پیش اون که فرستاده می بیند کافر حسرت می و یقول الكافر یا لیتنی کنت ترابا کافر میگه ای کاش من خاک بودم یعنی خاک می بعضی مفسری میگن منظور این است که همون وقتی که خدا تعالی در دنیا بر من موت آورد و من مردم و در قبر دفن شدم و تبدیل به خاک شدم دوباره زنده نمیشدم شدم اما بعضی میگن نه منظور اون خاک اول است که خداوند میفرماید ما انسان را از خاک آفریدیم کافر تمنا میکنه کاش من همون طور خاک می ماندم من پیدا نمیشدم من خلق نمیشدم از بس که اونجا برایش ندامت و پشیمانی است الله تعالی بر همه ما لطف بفرماید